این داستان دختر زیبایی مسافر چی روزی کاری در شهر پاریس زنی زندگی می کرد که خونه داشت. اون ایتالیایی بود و به خاطر زیبایی فوقلادهش در همه جا شهرت داشت. هر روز آدم زیادی از سراسر دنیا به اون مسافرخونه خونه می تا زن زیبا رو ببینن. به این دلیل مسافر خونه همیشه پر بود و جای خالی نداشت. بین مسافرها از درشگچی و بازرگان تا عیان و اشراف و حتی پادشاه و سران کشورها وجود داشتند. ولی برای اون خانم فرق نمی که کی نوکر و کی آقا. بلکه تنها و تنها چیزی که براش مهم بود تعریف و تمجید از زیبایی و جمالش بود. تا اونجا که زمان نوشتن صورت حساب از مشتری میپرسید، پرسید شما از کجا آمدید قربان مشتری می گفت از میلان از تورین از ونیز و یا جاهای دیگه زن می گفت آیا تا به حال زنی به زیبایی من دیدید در این مورد اگه مشتری جواب میداد خیر خانم من هیچ جای دنیا زنی به زیبایی شما ندیدم و شما ترین زن دنیا هستید زن خوشحال می و توی صورت حسابش می نوشت سه تا صوبونه، سه تا نهار و سه شب اقامت جمعا میشه دوازده فرانک ولی شما نصف اون رو بدید یعنی شش فرانک بدید و مشتری دیگه هم باید بیست فرانک می پرداخت چون که اون را زیباترین زن جهان نامیده بود و صورت حسابش فقط میشد 10 ده فرانک. این داستان روزها و سالها ادامه داشت تا دختر مسافرخونه چی بزرگ شد و قصه به نقطه‌ای بسیار عجیب و نکردنی رسید. روزی مسافری از روم به مسافرخونه اومد. اون سه روز اونجا موند و از خدمات و پذیرایی‌ها هم بسیار راضی بود. اما زمان پرداخت صورت حساب در برابر اون سوال همیشگی گفت من بله بله یه دختر زیبایی هم دیدم که از شما زیباتره. مسافر خونه چی که خیلی ناراحت شده بود گفت کجا؟ کجا دیدی؟ مسافر گفت همینجا همین نزدیکی ها خانم امروز صبح دیدم دختر شما پشت پنجره بود به نظرم اون از شما زیباتره. مسافر خونه چی زیبا با خشم و غذب نوشت سه تا صبحانه، سه نهار، سه شام و سه شب اقامت؟ مجموعاً میشه دوازده فرانگ ولی چون شما این رو زدید باید دو برابرش رو بدید یعنی بیست و چهار فرانگ مسافر خونه چی که فکر میکرد خدا کسی رو به زیبایی اون نیافریده و از همه مردم جهان انتظار داشت فقط از زیبایی اون تعریف کنن از شدت خشم و ناراحتی خدمتگذار پیرش رو صدا کرد و گفت گوش کن، فردا صبح زود دخترم رو ببر جنگل و اون رو سربنیس کن. برای اینم که مطمئن بشم که دستورم رو اجرا کردی، باید قلب و انگشت کوچیکش رو برام بیاری. خدمتگزار پیر که از ترس و وحشت مثل بید می لرزید، با اعتراض گفت، این چه انتظاریه که از من داری خانم؟ ولی با شنیدن تهدیدات مسافر خونچی که در صورت امتناع از اجرای این دستور کشته میشد بیشتر از اون که ساز مخالف بزنه مجبور شد که دختر رو صبح زود بیدار کنه و برای کندن گیاهای جنگلی اون رو به جنگل ببره دختر که با خوشحالی از جا پریده بود زنبیلی برداشت و دنبالش راه افتاد اونا رفتن و رفتن تا ظهر شد و به وسط جنگل رسیدند. دختر وحشت زده و حیرون از خدمت گذار پرسید که اینجا کجاست؟ منو کجا داری میبری؟ خدمت گذار آه سردی کشید و گفت خودم هم به کجا میبرمت. خانم دستور داده که تو رو سربه نیست کنم ولی وجدانم راضی به این کار نیست. دختر زیبا مات و مبهوت پرسید؟ مگه من چی کار کردم که مادرم نقشه قتلم رو کشیده و میخواد منو بکشه؟ خدمتگزار گفت منم نمیدونم. قراره که قلب و انگشت کوچیکت رو براش ببرم تا خیالش راحت بشه که تو مردی وگرنه منو میکشه. دختر زیبا زار زار گریه کرد و گفت حالا که این آرزوی مادرمه به احترام اون حاضرم به استقبال مرگ برم منو بکش. خدمتگذار پیر سرش رو تکون داد و فریاد زد. نه nah, من این کار رو نمی کنم. حتی اگر به قیمت جونم تموم بشه. تو این وقت از دل جنگل انبوه و مخمل فام آهوی زیبای تیر خورده ای که غرق خون بود مقابل پای خدمتگزار و دختر روی زمین افتاد. خدمتگزار با خوشحالی به دختر گفت فهمیدم چی کار کنم. قلب این آهو رو در میارم و به جای قلب تو برای مادرت میبرم. ولی انگشت کوچیکت رو چی کار کنم؟ خدمت گذار وفادار و مهربون قلب آهو رو در آورد و انگشت دختر رو برید. زخم انگشت اون رو با برگهای جنگلی بست و با خداحافظی از دختر زیبا اون رو تک و تنها وسط جنگل رها کرد. قلب آهو، و انگشت دختر را برداشت و به سوی مادر رفت. دختر بیچاره تک و تنها وسط جنگل به سرنوشت بد خودش فکر میکرد. مدتی این طرف و اون طرف به دنبال جایی برای استراحت رفت تا سرانجام به محل وسیعی رسید که قصر کوچیکی وسط اون بود. دختر جلو رفت و در قصر رو زد. یک بار دو بار سه بار ولی جوابی نشنید سرانجام خودش در رو باز کرد و داخل قصر شد توی اون قصر کوچیک سکوت مطلق حاکم بود و کسی پیدا نمیشد وسط یک سالن بزرگ میز بزرگی با سیزده صندلی برای سیزده نفر چیده شده بود توی اتاق مجاور هم سیزده تا تخت خواب شیک و مرتب به چشم میخورد. دختر با حیرت از خودش پرسید اینجا کجاست و دست سرنوشت چرا منو به اینجا کشونده. اون وقت مثل هر دختر دیگهی به آشپزی مشغول شد. اون سوپ تهیه کرد، رو کباب کرد و سیزده تا تیکه نون برید و داخل هر کدوم رو کمی سیر گذاشت. هنوز کارش تمام نشده بود که هم همگی از موحت باز قصر به گوشش خورد دختر وحشت زده و هراسون در زیر تخت پنهون شد سیزده مرد جوان که در زیر نور آفتاب قهوه رنگ شده بودند داخل سالن آمدند اونا سیزده تا دزد بودند که با دیدن اجاق روشن قابلمه سوپ و گوشت سرخ کرده غرق حیرت شدن و فکرشون به جایی میرسید مخصوصا وقتی فهمیدن مقداری از سوپ و گوشت خورده شده و به نوناام ناخونک زده شده از تعجب شاخ دارا وردن. کوچیکترین اونا گفت من باید بفهمم چه اتفاقی اینجا افتاده بنابراین فردا من میمونم خونه و مراقبت میکنم روز بعد دزد جوان توی قصر موند. بعد از ساعتی حوصلش سر رفت و جلوی در قصر نشست تا رفت و آمد مردم رو زیر نظر بگیره. اون تمام روز اونجا وای ساد ولی دست از پادرازتر برگشت. تو این وقت دختر زیبا تمام قصر رو مرتب و منظم کرد. برای خودش غذا پخت و با اومدن دزدا زیر تخت پنهون شد. دزدا بازم تعجب کردن به هم نگاه کردن شامشون حاضر بود میزا چیده شده بود و تکه های نون هم کمی خورده شده بود. دزد جوان در برابر نگاه های سوال برانگیز برادراش از خودش دفاع کرد و گفت که تمام روز جلوی در قصر نشسته ولی کسی رو ندیده که وارد قصر بشه. دومین دوست گفت حالا که برادرمون نتونست سر از این کار در بیاره خودم فردا توی قصر میمونم و از قصر مراقبت میکنم فردای اون روز اون هم مثل برادر کوچیک تمام روز جلوی قصر نشست ولی نتونست مچ دختر رو بگیره دختر خونه رو مرتب کرد غذا پخت و کمی هم از غذا خورد سرانجام وقتی دوازده نفر از دوستها یکی پس از دیگری به گشت زنی و نگهبانی از قصر پرداختند این راز سر به مهر رو کشف نکردند نوبت به آخرین اونا رسید یعنی سیزدهمین دوست سیزده دوست با اطمینان از اینکه که کسی نمیتونه سر اون رو کلاه بذاره با بیرون رفتن دزدا خودش رو داخل کمدی پنهون کرد این موقع بود که دختر زیبا بی خبر از همه جا به محض بیرون رفتن دزدا از زیر تخت بیرون اومد. تخت خوابها رو مرتب کرد، به آشپزی مشغول شد، غذا رو حاضر کرد، کمی از سوپ و کباب و تکه از نون رو خودش خورد و به سمت مخفیگاهش رفت که یک باره مرد غول سر راهش رو گرفت. رئیس دوزده گفت سرانجام دستگیرت کردم حالا فهمیدم چه کسی داره این خونه رو مرتب میکنه قضا میپزه و به نونای ما دست میزنه دختر با گریه زاری از رئیس دوزده خواهش کرد که حرف اون رو بشنوه و اون رو ببخشه سیزدهم این دوز هم دلش به رحم اومد و اجازه داد تا دختر اصل ماجره رو براش تعریف کنه این قصه رو که چگونه مادرش تصمیم گرفته بود اون رو راهی دنیای دیگه بکنه و چگونه خدمت گذار پیر و دلسوز اونا از کشتن اون چشم پوشی کرده بود و سرانجام داستان عجیب و غریب راه یافتنش به این قصر رو رئیس دزدا با شنیدن سرگذشت اندوه بار دلش به حال اون سوخت و گفت بسیار خوب از این به بعد تو توی اینجا مثل خواهر ما میمونی ولی تا صداد نکردم از زیر تخت بیرون نمیای آفتابی نمیشی جلوی در قصر اددهی با هم حرف زدند از قرار معلوم هم همه دزدا بود که داشتن به قصر برمیگشتند ولی دختر با خیال راحت زیر تخت خوابیده بود دزدا از رئیس پرسیدن چی شد؟ تو موفق شدی؟ پرنده ای رو که به نونای ما نوک زنه رو بگیری؟ رئیس گفت بله. دوزده هیجان زده فریاد زدند. کو؟ کو اون رو به ما نشون بده؟ رئیس گفت صبر کنید. قبل از هر چیز باید قول بدید که اون رو ببخشید و مجازاتش نکنید. وقتی دزدا قول دادن که دختر رو میبخشن و کمترین عذیت و آزاری به اون نمیرسونن، رئیس با صدای بلند از اون خواست از زیر تخت بیرون بیاد و خودش رو معرفی کنه. دزدا از تعجب به زمین میخکوب شدند. وسط اتاق دختر بسیار زیبایی وایستاده بود که تا به حال کسی به زیبایی اون ندیده بودن. از اون به بعد دختر زیبا به خوبی و خوشی کنار دزدا زندگی کرد. دوزده مثل یه خواهر دوستش داشتن و زمان بیرون رفتن به اون توصیه میکردن که کسی رو به خونه راه نده. چرا که مادرش اگر بفهم اون زنده است اون رو پیدا میکنه و میکشه. از غذای روزگار مسافر چی زیبا با خبر شد که دخترش زنده است. اون این خبر رو از زبان یک فالگیر شنید. اون هم تصادفی و در خلال گفتگوی اون دوتا با هم. فالگیر گفت خانم مسافر چی شما خیلی زیبا هستید ولی دخترتون از شما زیباتره. زن گفت دختر من مرده. حیوانات جنگلی اون رو تیکه و پاره کردن و خوردن. فالگیر گفت نه بابا اون نمرده. مطمئن باش که اون زنده است. دختر قشنگ تو توی قصر دزدا زندگی میکنه و اونجا در امن و امانه. اگر بخوای میتونم طرح قتلش رو برات پیاده کنم. زن زیبا گفت موافقم این کار رو بکن وگرنه قلبم از شدت ناراحتی از کار میافته. فالگیر کیسه ای پر از پول و جواهرات گرفت و قدم تو راه کشتن دختر زیبا گذاشت. تو این زمان دزدا خودشون رو برای رفتن به کلیسا آماده می کردن. تا بعد از اون به اتفاق دختر توی مهمونی بزرگی که در یکی از روسته های اطراف برگزار می شرکت کنند. بنابراین به دختر سفارش کردند که لباسای زیبای خودش رو بپوشه و منتظر برگشتن اونا بشه. دختر زیبا خودش را آماده رفتن می کرد. پر از لباس های زربافت بود و صندوق ها مملو از انگشتر و گوشواره. تنها چیزی که کم بود یک جفت کفش زیبا. دختر در فکر و خیال کفش سیر می کرد که سر و کله فالگیر پیر با کیسهای پر از کفش های ای و طلایی پیدا شد. فالگیر به دختر زیبا که ناراحت و قمگین جلوی در قصر وایساده بود گفت دختر خوشگل کفش زیبا دارم بخر گرون نیستن ارزون میفروشم امتحان کن دختر زیبا یکی از کفش های رو رو پا کرد ولی پوشیدن کفش همون و جلوی چشمش سیاه شدن و با سر به زمین افتادن همون شب که دزدا از کلیسا به قصر برگشتند، دختر زیبا رو مرده دیدند. همشون به گریه افتادند و اون را توی تابوت گذاشتند. در تابوت به جای چوب بلود از کریستال بود. تابوت را وسط سالن قرار دادند و با غم و اندوه زیاد قصر رو برای همیشه ترک کردند. جنازه دختر زیبا روزهای زیادی ساکت و آروم به حال خودش رها شده بود تا روزی از روزها شاهزاده ای به دنبال شکار راهش به اون جنگل افتاد اون و پیشکارش در به در به دنبال گوزن می‌دویدند که یک باره به قصر کوچیک دوزدار رسیدند شاهزاده با تعجب پرسید این چه قصریه که من تا به حال از وجود اون بیخبر بودم شاهزاده و پیشکار همراه هم وارد قصر شدند. از کسی خبری نبود. سرانجام به داخل سالن بزرگ رسیدن که تابوتی با درب کریستال در وسط اون قرار داشت. در تابوت رو باز کردند. دختر بسیار زیبایی توی اون خوابیده بود. دختری که زیباییش مثال زدنی بود و هیچ زیبا رویی به پای اون نمیرسید. شاهزاده به پیشکار همراهش دستور داد را بیاره. تابوت رو بلند کرد و توی کالسکه گذاشت و به سمت قصر خودش رفت. از اون به بعد شاهزاده روزا از اتاق خودش بیرون نمی اومد. اگر هم به دنبال کاری بیرون میرفت در اتاق رو قفل میکرد تا کسی وارد اون نشه. ملکه با دیدن رفتار غیرعادی شاهزاده از ندیمش پرسید این روزا چرا شاهزاده غمگین و افسرده است؟ چرا در اتاقش رو قفل میکنه و کسی را به اونجا را نمیده؟ ندیمه به دنبال یافتن راز و رمز مسئله به ملکه پیشنهاد داد؟ ای ملکه گرامی هنگام نهار که شاهزاده اتاقش رو ترک میکنه به اونجا برید و کلید رو از جیبش در بیارید تا وقتی اون نیست پی به ماجرا ببرید. ملکه که نگران حال و روز پسرش بود، توصیه ندیمه را با جون دل قبول کرد. اون یه روز موقع نهار کلید اتاق رو مخفیانه از جیب شاهزاده بیرون آورد و همراه ندیمه به سرعت به اتاق رفت. توی اونجا دختر زیبایی رو در لباس زر بافت، انگشتر و گوشواره و یک کفش طلایی توی پا دید. دختر به آرومی دراز کشیده بود. گویی که سال هاست مرده. ملک با دیدن دختر زیبا گفت پیشکار من. حالا فهمیدم که دلیل افسردگی و پریشون حالی شاهزاده وجود این دختر مرده است. ولی راستی بگو ببینم چرا این دختر یه لنگه کفش به پا داره؟ اون لنگه دیگش کجاست؟ دختر زیبا با شنیدن این حرفا نفس عمیقی کشید و از خواب سنگین بیدار شد. چشمش رو باز کرد و گفت من کجا تو رو به خدا به من بگید که اینجا چیکار کار میکنم. ملکه مهربون گفت تو تو قصر پادشاهی ای دختر زیبا پسر من شاهزاده این سرزمینه. تو این وقت شاهزاده عصبانی و خشمگین وارد اتاق شد اصلا انتظار نداشت که کسی بدون اجازه اون کلید را اد جیبش برداره و داخل اتاقش بشه ولی با دیدن دختر زیبا که چشمش رو باز کرده بود و عمر دوباره یافته بود همه چیز رو فراموش کرد و شادی سراسر وجودش رو گرفت ملکه پیر گفت پسر عزیزم من بسیار نگرانت بودم ولی حق با تو بود عروسی به این زیبایی توی دنیا پیدا نمیشه چند روز بعد به دستور ملکه مراسم عروسی شاهزاده و دختر زیبا برگزار شد تمام مردم شهر و روستا از جمله 13 تا دوست توی اون عروسی باشکوه شرکت کردند و تنها کسی که به این جشن نیومد مسافرخونه چی بود مسافرخونه چی تک و تنها توی آتش قرور و حسد سوخت و دودش به هوا رفت ولی دختر زیبا سالهای سال کنار شاهزاده اون سرزمین به خوبی و خوشی زندگی کرد کانال تلگرامی هزار افسان صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه .me می سلش مهران دوستی تی نشانی وبلاگ ما ام s t i نوکت مهران دوستی کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد استانی